حکایت یکی را زنی صاحب جمال جوان درگذشت و مادر زن فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند و مرد از محاورت او به جان رنجیدی و از مجاورت او چاره ندیدی تا گروهی آشنایان به پرسیدن آمدندش یکی گفت چگونه ای در مفارقت یار عزیز گفت نادیدن زن بر من چنان دوشخار نیست که دیدن مادر زن گل به تاراج رفت و خار بماند، گنج برداشتند و مار بماند. دیده بر تارک سنان دیدن خوشتر از روگ دشمنان دیدن، واجب است از هزار دوست برید تا یکی دشمنت نباید. دی